عوض بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام و السلام علی نبینا و آله طاهرین خدمت عزیزان دانشجو خودم عرض سلام دارم اموز به ارز میکنیم انشالله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشالله که به لطف الهی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید تاعت و عبادت شما هم مقبول و انشالله بهترین تقدیرات را هم از طرف خداوند برای شما تقدیر گردد و التماس دا. اما بحث ما در قصیده‌ای که از آقای متنبی میخاندیم و بسیار قصیده زیبایی بود تا بیت بیست و یکم رو من برای شما خوندم و الان بیت بیست و دوم رو در خدمت شما هستیم و در بیته بیست و یکم ایشون گفتش که در اون جنگ وقفت و ما فی الموت شک لواقفی کأنک فی جفن الردا و هو نائم گفت تو وایستادی تو اون میدون جنگ در جایی که هیچ شکی برای کسی که اونجا وایسه کشته خواهد شد نبود یعنی تو در بخبوهه جنگ در جایی بودی که همه میگفتن اگر اونجا کسی باشه دیگه سالم نمیمونه اما خدا رو شد تو سالم موندی به شجاعت خودت گو یا تو در چشم حلاکت واقع شده بودی ولی حلاکت و مرگ خواب بود و تو رو ندید و سالم ماندی، درست شد این بسیار بسیار زیبا بود یعنی گفت ایستادی تو در میدان جنگ موقعی که شک نبود کسی که اونجا وایستاده مرگ سراغش خواهد آمد ولی گویا یا مرگ خواب بود و تو در مقابل چشم مرگ بلکه در زیر پلک چشم مرگ بودی به خاطر اینکه شدت بلایا بود این نهایت شجاعت تو رو نشون میده که انکفی جفن و جفن گفتیم یعنی پلک یعنی در،, یعنی در پلک مرگ واقع شده بودی زیر چشمش بودی آه. ولی و هوا و حالان که او خوابیده بود و متوجه تو نبود که نکفی جفن ردا و هوا نائم و ندید تو رو و تو سالم موندی و مرگ از تو غافل شد و این بزرگترین مدح در حق اوست یعنی تو تو میدون جنگ مثل فرماندوان دیگر نبودی که از دور فرماندهی میکنن تو دل جنگ بودی جایی که هیچ کسی نمیگفتن از اونجا سالم بیرون میاد گویا تو در زیر چشم مرگ و حلاکت بودی اما او از تو غافل بود او از تو غافل بود یعنی مرگ تو رو ندید یعنی تو انقدر شجاع بودی تو انقدر زبردست بودی انقدر قدرتمند بودی که بگو از دست مرگ فرار کردی و مرگ متوجه تو نشد وقفته و مافل الموت کن لواقفی که انکفی جفن ردا و خوبه نائمون پس اینکه که میگه وقفته یعنی تو رفتی وسط میدون جنگ بدون اینکه بترسی اصلا و عبدا جنگت تم بتن کشت و کشتار و هر کسی میگید میگفت این از این معرکه سالم بر نمیاد و حتما مرگ سرابش میره اما تو با شجاعتت جوری کردی که مرگ با اون که تو زیر چشم او بودی او از تو غافل بود و خواب بود و تو رو ندید یعنی به خاطر شجاعتت و به خاطر سرعت عملت خب این تمام شد که انکفی جفن ردا و خوبه نابه تمر رو بکل و حالا بعد از جنگ رو داره میگه یعنی جنگ که تموم شد اسرا رو گرفتند آوردند تو به عنوان فرمانده پیروز وایستده بودی اینها میآمدند از مقابل تو میرفتند این صحنه رو داره ترسیم میکنه این سکانس به امروزیها. امروزی ها. تمور رو. تمور رو، فعل مزاره این مسئله مال رو گذشته است این که میگه تمور رو مازی استمراریه یعنی مرور میکردند یعنی میامدن می نه نگفته مررد گفته تمور رو با اون که این قضیه بعد از جنگ او سروده شده و داره فتح سیف و رو به رخ میکشه این فعل مزاره اینجا برای استمرار فقط میگه تمر رو بکل ابطال عبتال جمع بتل یعنی پهلوان پهلوانان دشمن عبتال یعنی عبتال رو لعدوف پهلوانان دشمن تمر رو بکل مرربهی یعنی از کنارش گذشت. از مقابل تو میگذشتن پهلوانان دشمن کل ما حال است از برای الابطال در حالی که زخمی بودند حضیمتن در حالی که شکست خورده بودند این دوتا حال است از برای علبتال پهلوانان دشمن از مقابل تو که وایسده بودی شکست خورده و زخمی میگذشتند؟ این و حالی است این حال است این جمله حال است برای کاف اون دوتا حال بود برای علبتال و حالان که وجه و که و حالان که صورت تو می درخشید و سق رو که باسم و دندانهای تو متبسم بود آه تو با صورت گشاده از این پیروزی و با تبسم نگاه می کردی و پهلوانان دشمن همه زخمی و شکست خورده از این مقابل تو حرکت میکردن کلمه جمع کلیمه درست شد مثل جریح جرها قتیل قتلا درست شد به معنای جریح کلیم به معنای جریح چطور جریح جمعش میشه جرها کلیمم میشه کلمه درست شد هزیمه یعنی منحزمه هزیمتن یعنی منحزمتن یعنی محزومتن شکست خورده درست شو این فعیله به معنای مفعوله یعنی محزومه درست شد محزومه <تصفيق> کلمه جمع اومده چون ابتال جمه هزیمه مفرد محنس اومده چون جمع مکسر در حکم مفرده بگید مهنسه. یکیش رو حال رو به شکل جمع آورده چون علبتال جمعه جمع, جمع بطر چون جمع مکسره میشه معامله مفرده مهنس باش بکنی لسا حضیمتن رو به شکل باتا آورده مفرد معنس آورده شو؟ در واقع حضیمتن گفته وضاح یعنی مشرق از وضوح دیگه یعنی مشرق تابان چهره تو تابان بود میدرخشید یعنی کاملا باز بود و دندانهای تو سنقل دندانهای منظمه دندانهای منظم تو درست شد تبسم میکرد خب چیزی دیگه نداره یعنی قلاص اینها زخمی و شکست خورده از مقابل توی سکانس رو هم آورد با این دو حال اهلوانان دشمن از مقابل تو رد می شدن و حالان که همشون تسلیم بودن یعنی دیگه و حالان که این که گفته زخمی بودن و شکست خورده میدی واسه چی گفته یعنی اونها تا آخرین نفس جنگیدن دیگه از نفس افتادن شما اسیرشون کردید از این آدمایی نبودن که به قول خودمون دستشون رو زود ببرن بالا و دستگیر شن. نه گربداغون شدن ادهشون هم کشته شدند. یه تعدادش داغون شده اسیر شدن شکست خوردن اینو تا آخرین نفس در مقابل شما بگید جنگیدن تو هم با قدرت تمام ایستاده بودی و شکست اینها رو تماشا می کردی دنوان فرمانده بگید پیروز فرمانده پیروز خب پس حضیم یعنی محضوم هزیمه با تا اومده چون جمع مکستر در حکم مفرده بگید محنسه خب دیگه تقریبا همه رو گفتم چیز خاصی دیگه توش نیست قشنگ بود میگه تجاوزت ت مقدار شجاعت و نوها الى قول قومن انت بالقیب آلمون حالا مبالغه داره میکنه میگه نوها جمع است، یعنی عقل نوها جمع نهیست یعنی عقد این الى قول قومن متعلق به تجاوزت است الى قول قومن متعلق به تجاوزت است او این انت بالغیبه عالمون مفعول قوله چون قول مصدر اضافه شده به قوم یعنی الا ان قال قوم انت بالغیبه عالمون الا قول قوم یعنی الا ان قال قوم تا اینکه گفتند جماعتی انت بالغیبه عالمون این یعنی انت بالغیبه آلمان مفعول قوله میگه شجاعت خوش شجاعت میگن باید اقدام عقل پسند باشه دیگه ولی اگر عقل پسندانه نباشه میشه تحور خودکشی اون دیگه به درد نمیخوره میگه تجاوز تا تو گذشتی مقدارش شجاعت و نه و اندازه شجاعت و عقل رو یعنی میارهای شجاعت های شجاعت و عقل رو در نوردیدی گذشتی گذشتی از این مثل اینکه تجاوزت از نهر ایلا گذشتی از این نهر به سوی فلان از این گذشتی به کجا رسیدی؟ به اینجا تجاوزت مقدار از شجاعت و نهار الا اون مقدار هم جا است از کار شجاعت و کار عقل پسندانه تو گذشتی اینا رو پشت سر گذاشتی. یعنی کار تو تو معیار شجاعت نمی گنجید تو کار عقل پسندانه بگید نمی کنجید. انقدر از این گذشتی تا رسیدی به اینکه که الا قول قومه تا جایی که یه عده گفتن انت عالمون بالغیب گفتن این آدم غیب میدونه میدونه که کشته نمیشه میدونه می که از طرف خداوند به او پیام داده شده که او به قول خودمون سالم میماند خیالش تخته م? مثل کسی که بهش گفته باشند تو آسیب نمیبینی از طرف خدا به غیب به او خبر داده شده که تو آسیب نمیخوری میزنه میره جلو معیار های شجاعت و عقل برای خاطر این که تو آسیب نمیبینی ولی اگه تو یقین داشته باشی که آسیب نمیبینی خب به دل هر بلایی میزنه میگه بعضیا چون دیدن کار تو انقدر با بقول خودمون وحشتناک است از لحاظ خطر کار و خارق العاده است گفتن چه شجاعت که اینطوری میشه شجاعتی اینطوری نیست میونه یعنی دینولوژیه عقل اینطوری نمیگه معیارهای شجاعت و عقل تو پشت سر گذاشتی بعد یزدی گفتن بابا خیالش جمعه این از غیب بهش اطلاع دادن که تو زنده میمونی دیگه با قول خودمون نمیترسه یعنی عالم یعنی متيقن عالم با با بیاد علم به یعنی تيقن یعنی تا اینکه یه عده گفتن انت متيقنن بالغیب تو یقین داری به واسطه غیب یعنی تو با قول خودمون یقین داری به واسطه غیب که تو کشته نخواد خب تمام شد اینم اینم باز خیلی قشنگ بود یعنی کار تو رو نمیشه با میارهای عقل و شجاعت زنجید جوری که مونده بودن یه دی زیادی الا قومن. قومن نکرم هست هم هم. مثلا این تعداد زیادی از مردم توی لشگر که کار تو رو دیدن گفتن بابا این از غیب بهش اطلاع دادن ها که تو مشکلی پیدا نخواهی کرد ولی این نباید اینطوری به دل جنگ میزن زممت جناحیهم علال قلب زمتن تموت الخواهی تحتها والقوادم فعلی قشنگ گفته یه دو تا لغت داره معنا کنم این رو هم میتونید قشنگ بفهمید. این بیت با بیت بعدیش با همند. چون اون به متعلق به زمم است. به ضربن اتلهامات و نسرقای بو و سار الاللبات و نسرقای اگر دوتا رو با هم معنا کنم راحت میتونید مطلب رو بفهمید. ببینید یادتون هستش من گفتم لشکر رو بهش میگن یعنی خمیس و این لشکر پنج موضع داره یه قسمتش پیش که جلو میرن یه قسمتشم تدارکات و عقبه است که پسش میاد عمده لشکر وسطه که میمنه هست و میسره هست و قلب لشکر این بدنه لشکره بروس شد؟ که گفتم اینو تشبیه به پرنده هم میکنند یعنی لشکر که یتورمیمیگ مثل اقابیه که داره تو هوا بالشو باز کرده میده اقاب یه سر داره یه دم داره که نسبت پرندتره و دوتا بال بلند و یک تنه اگر یه کسی بخواد مثلا فرض کنید که روباهی شغالی پرندهای رو بگیره کبوتری رو بگیره خوب اینو بخواد در هم بکوبه چیکار میکنه این دوتا بالاشو بلند میکنه میکوبه روی بدنش و درهم میشکنتش یعنی بالهای اونو بلند میکنه مثل اینکه دستاشو بشکنتی کنه بالهای اونو بلند میکنه خورد میکنه روی بدنش اون دیگه درهم کوبیده میشه اون پرنده میگه تو لشگر دشمن و مثل یه کبوتر میمنه و میسرهش رو گرفتی بلند کردی گذاشتی روی قلب لشکر همه رو با هم دیگه منگنه کردی همه رو به هم چسبوندی درست شد بعد پر پرندگان اگر نگاه کرده باشید پر پرندگان یه سری پرهای بلند دارن درست شد یه سری پرهای ریزه که زیرشه یه سری پرهای بلند دارن یک سری پرهای ریز که زیرونه اونه پرهایی که ریزه و کچیکتره بهش میگن خوافی چون از خافی است، یعنی زیر پنهانند اون پرهایی که زیر پرهای شاپرهای اصلی پرنده هست اونایی که بلنده بشه میگن هم قباده. درست شد خب وقتی که بال پرنده رو وقتی بال پرنده رو در هم بشکنن اون پرهای بقول خودمون ریزش و غیره زیر اون پرهای بلندتر خورد میشه از بین میره درست شد خورد میشه از بین میره. میگه تا دوتا لشکرو. رو سمت چپ و سمت راستش رو بلند کردی کوبیدی روی قلب لشگر و در بین بار مثل پرندهی رو که دوتا رو بگیرن بکوبن روی بدنش پرهای درشتش روی پرهای ریزش خورد و خمیر بشه و از بین بره درست رو حالا نگاه کنید لغت رو زممت زممت یعنی چسبوندی جناحه هم این هم میخوره به اون ابطال یعنی پهلوانان دشمن دوبال لشکر دشمن رو دوبال لشکر دشمن دوبالش بالش شه؟ میمنه و میسه جناحه هم مفعول زمان. قلب یعنی علا قلبه هم. بر قلب لشکرش دوتا بالش رو بر روی قلب لشکر بگید منگنه کردی کوبیدی بالهاشو در هم شکستی کوبیدی رو تنش رو تنهی لشن زمتن مفعولن مطلقه در هم کوبیدنی منگنه کردنی که تموتو این تموتو صفت زمتن تموت الخوافی تحتها خا میخوره به زمه که پرهای ریز میمیرند در زیر این منگنه کردن تو قوادم و پرهای درشت یعنی خورد و خمیر میشن پرهای ریز و درشتش وقتی اینا رو همه رو در هم له کردی دیگه پر ریز و درشتی باقی نیمونه خب معلوم از اون پرهای ریز منظورش بگه پیاده نظامه پرهای درشت فرماندهان و سوار نظام درست شد و منظور از دو دوبالش میمنه و میسره لشکره این عمل رو تشبیه کرده به اینکه یک مثلا فرض بفرمایید که روباهی یک کفتاری یک پرندهی رو میگیره اینا دوتا بالش رو میپیچونه و پر و بال و همه رو, رو روی بدنه خورد میکنه این دیگه له لورده میشه میکشدش وقتی سید میکنه اینطور در درست شد. دو بال لشکر منظور میمنه و می سرشه. قلبش هم که وسط لشکره درست شد و منظور از پرهای ریز و پرهای دراشت اونها همه خورد و خمیر شدن در این زمی که تو کردی یعنی پیاده نظام و بگیت سوار نظامی که اونها داشتن خب اینو با چی انجام دادی؟ این لشکر رو به زربه با یک ضربی یک یورشی عطل هامات این صفت زربه عطا فایلش میخوره به زرب زربی که رسید به سر اونها هامه جمعش هامات یعنی کاسه سر. زربی که به سر این لشکر خورد سر این پهلوانان خورد با یک زرب شمشیری که به سر اینها خورد و نسرو بود شمشیر به سرشون هم خورده بود پیروزی هنوز قائب بود هنوز پیروزی دست نیوده اونا هنوز از پا افتاده بودن و ساره ساره یعنی ضرب و رسید این ضرب الى لبات به سینه ها. یعنی شکافت کلل آورد تا رسید به سینه و نسر و قادم اون موقع از پا افتادند و پیروزی رسید یعنی این لشکر رو تو آوردی بگو دوتا بالشو مثل دوتا بال پرنده میمنه و میسرشو رو هم ریختی سوار نظام و پیاده نظامشو همه به هم منگنه کردی همه در زیر ضربه تو موندن ضربهی که وقتی به سر اینها خورد یعنی ضربهی وقتی اولش رسید بازم اینا مقاومت کردند. و نسوگاهی و حالان که پیروزی به دست نیمده وقتی ضربه رو کاری کردی که به سینه اینها رسید بگو اون موقع پیروزی به دست اومد لبه که جمعش میشه لبات قسمت بالای سینه از این بالای سینه این گلوگاه درست وقتی که به گلوگاه اونها ضربه تو رسید کله رو دو کرد اون موقع تازه اینها دستشون کوتاه شد و دیگه از بین رفتن و الا با اون ضربه اول هم اینقدر اونها مقاوم بودن خب اینم قشنگ بودا خیلی زیبا بود پس زممته خب دیگه استعاره ها دیگه میفهمید دیگه یعنی این لشکر که از پیاده و نظام و سوار نظام بود تا میمن و میسر داشت میمر و میسره اون رو مثل دوتا بال یه پرنده در روی بدن اون در قلب اون لشکر خورد و خمیر کردی خورد و خمیر کردنی که مرد تموتو ریز و درشته اون لشکر تموت و الخوافی تحتها در زیر این ضربه تو زمه تو خوافی مرد قوادم مرد یعنی ایش که سالم نمون سوار نظام و پیاده نظام را همه رو خورد و خمیر کرد به ضربن با یه ضربی این کار کردی که عطل این ضرب رسید به سرها در صورتی که هنوز لشکر مقاومت میکرد پیروزی به دست نیمده بود و ساره الان لباد و رسید این ساره با ساد وقتی ساره با الامیاد به معنی ساره با سینه یعنی و رسید و وصله الان لباد وقتی رسید به سینه های اونها این ضربه و نصر قادمون پیروزی به دستونه قادم و قائب با هم صنعته بگید تزاد دارند و این کلمه هم شما اینجا دارید و دیگه چیز خاصی توش نداره اطل هامات صفت به زربن و سار الاللبا اطفه به جای اطل خب اینم بیت به این زیبایی و این دو بیت با هم موقع المعانی بودند و هر دو تا بیت با هم معنا شدن درست بریم سر بیت بعد حقرت ار ردینیات حقرت حتی ترحتها و حتی که اند سیفه لرمه شاتمی اینجا یک شکل قشنگی رو گفته که لا داره شجاعت اون میگه دیگه در وصف شجاعت روی داره صحبت میکنه رودینیات رودینیات جمع رودینیه نیزه است رودینه یک خانمی بوده که نیزه ساز بوده با شوهرش و این رودینه در واقع یعنی نیزه رودینی یعنی اون ساخت اون درست شد یعنی اون نیزه اونطور نیزه درجه یک اصله اون زمان نیزه نیزه ساز درجه یکش رودعینه بوده به اون نیزه خیلی خوب میگفتن رودینیه چه میشه چی؟ رودینیات خب اینو فهمید قدرته هم که میدونید دیگه درست شد این خانمم توی یمن بوده نیزه ساز بوده درست شد و به او میگفتند ردینه میگه حقرتر الردینیات حقرته یعنی چی یعنی تحقیر کردی کوچک شمردی ردینیات های ردینیه چرا میگه تو تحقیر کردی کوچیک شمردی نیزه ها رو نیزه های رودینیه رو چون میگن نیزه نیزه سلاح آدم های ترسو به تو حساب میشده تو چون نیزه بلنده دو متره خوب یه متر و نیمه این باعث میشه که شما دشمن بهت انقدر نزدیک نشه بتونی باش بجنگی لذا خیلی ها که با نیزه میجنگند یعنی در واقع اینها بگید قدرت جنگیدن با شمشیر رو ندارن چون شمشیر به طرف اجازه میده که بیاد جلو تو باید بلند کنی بزنی ممکنه که تو تو بلند کنی اون بزنه باید خیلی توانمند باشه میگه تو نیزه رو تحویر کرد حتی طرف کره یعنی پرت کرد تا جایی که پرتش کردی گردی نیزه من دست بگیرم به جنگم ما شمشیر همه اینا رو شجاعت اینقدر می نازیدی ندی نیزه بالا اوناییه که از جنگ تن به تن یه مقدار وحشت دارند از اومدن جلوی دشمندن من با شمشیر کار خودم را می بسار. عقر تر حتی تره تها ها میخوره به ردینیات و حتی که انده سیفل رمه جوری که انگار پیش تو شمشیر داشت فحش میداد به نیزه شمشیر به نیزه میگفتش که ترسو بیارسه تو نمیتونی در مقابل دشمن جلوتر از این بری؟ آه؟ یعنی پیش تو اینطوریه یعنی تو ترجیح دادی شمشیر رو میزه چون سلاح شجاعان شمشیر امیر المومنی داشت درست شو؟ چون باید حتما دشمن بیاد جلو تم به تم بشه تو اون رو انتخاب کردی؟ و انتخابت بر شمشیر نسبت به نیزه نیزه رو تحقیر کرد درست شد؟ جوری شد که انگار شمشیر داره فخر فروشی میکنه شماتت میکنه نیزه رو در پیشگاه تو یه ببین منم شجاع ای مثل سیف و دوله من رو ترجیح میده تو باره پیش اونایی که ترزو هستن کمتر از سیف و هستن. اونا باید تو رو به کار بگیرم سیف و دوله خب این هم فکر میکنم بیتی بود که فهمی بود حقرت رودعینیات حتی طرحتها تخییر کردی کوچک شمردی نیزه های حتی ها. تا طرح که تو این که اونا رو گشتی که ناگه بین با مال ادمای دیگه است اونا بیان با نیزه بجنگند لشگریان بدر شد و حتی حتی به جای و حتی قبل و حتی که اند سیف یعنی شمشیر تو درست شد شات مونلروم شماطت می‌کرد ای و ایگو اشکال میکرد به تمام نیزه‌ها بغ فروشی میکرد به اونها که ببینید سیف و دله منو دست گرفته شما برید پیش برگیه نیزه ها سیف و دوله شما رو سلاح جنگی حساب نکرد این داره در واقع به طور کنایی میگه که تو چه شجاعتی داشتی خب اگر تر یاد نیاد بودای نیاد مفخوله چون با و تهم هست نصفش به کسرشو حتی طرفت هایی حتی رو میگن به معنای تا اینکه ولی حتی ابتدایی بهش میگن حرف ابتداست. درست شد؟ و حتی کعن السیف لرمه شاتمون یعنی که سیف شاتمان شاتمون لرم شماطت میکرد نیزران. درست شد؟ لروم مال شاته. خب تمام شد اینا. چیز خاصی نده. شاتم هم که میدونید دیگه شماطت تو فارسی خودمون داریم. ما یعنی وشغال میگفته بهش کی شمشیر به نیزه یا شمشیر تو به نیزه ها میکرد شما میکرد میگفت شما ها باید تو دست آدم باشید که پایینتر از سیف الدوله سیف الدوله شما رو به عنوان سلاح حساب و من تلب الفتح الجلیل فا انما مفاتیحو مفاتیحو البیزو الخفاف و سواهم به این و من طلب الفتح الجليل الجلیل صفت فتح فا انما مفاتیهوهو الخفاف و سوارم سوارم جمع سارمه از سرمه یعنی قطر سارم یعنی شمشیر یعنی شمشیر برنده درست شد چون قطع میکنه بهش گفتن سوارم جمع سارم یعنی شمشیر قطع کننده مره درست شد شمشیر برنده بیزم جمع ابیزه اونم یعنی شمشیر اما ابیز یعنی سیگر شده آخته ابیز اسم شمشیره به دلیل اینکه که شده شمشیر تیز سواره جمع سارمه اون هم یعنی شمشیر اینا صفتهاییه که برای شمشیر به عنوان به کار رفته یعنی برنده قد کننده درست خفاف یعنی تیز جم خفیفه مرحف درست مفاتی جمع مفتاح یعنی پیلیت مفاتیهوهو یعنی مفاتیح الفتح زمیر میخوره به فتح فکر میکنم دیگه شایر رو میتونید معنام کنید میگه و ومن طلب الفتح و هر کسی که به دنبال پیروزی الجلیل بزرگ است. هر کسی پیروزی بزرگ میخواد دنبالشه فا این فقط و فقط جواب منه فا این نما مفاتی هو هو همانا فقط و فقط چلیدهای این پیروزی یعنی رمز این پیروزی در کجاست؟ البیز و الخفاف و از سوار من شمشیرهای تیز و آخته و برنده است هلکی که پیروزی شایان جلیل میخواد فقط و فقط رمز و راز این پیروزی عبارت است از, از سیوف الجلیل سیوف البیز شمشیرهای سیغل شده الخفاف یعنی تیز المرحفه از سوارم یعنی القبات شمشیرهای سیغل شده و تیز و برنده پیروزی با شمشیر به دست میاد کسی که دنبال پیروزی بزرگه فقط و فقط کلید های اون پیروزی عبارت است از شمشیرهای آخته البیس الخفاف تیز از سوارم قرد کنن ببینید این البیز و الخفاف و از سوارم ما هر ستای صفت از سیوفه دیگه که اون اینطوری بوده فعل نما مفاتیه ها از سیوف و الخفاف و از سواره گرچه الان اسم برای خود شمشیرم اینها شدن ولی منظور شمشیر بیز شمشیر خفاف و شمشیرهای سوارم یعنی شمشیر تیز و برنده و سیقل شده هستش که پیروزی میاره هر کی دنبال پیروزی خوبه پیروزی خوب کلیدش شمشیر است و من طلب الفتح الجدیدا من من شرطی است این طلب الفتح الجدید فعل شرطشه فانما جزای شرطشه چون جمله اسمیه بوده باهاهم و این نما مفاتیهوهو خوبه میخوره؟ به فتر جلیب البیز و از الخفاف و از سوا رمون خب راحت و زیاد مشکلی نداشت بیت بعد رو ببینید نصر تقوم با سه نقطه او قلعه به کلی کما نصرت او عروسه ادرا همون خیلی تشبیه قشنگی کرد ببین شو او هایده کوهیه که بقول خودمون اون قلعه بر روی اون بنا شده بوده شما می دونید که قلعه ها رو در بلندا ها که بتونن از اونجا دیدبانی کنند و به قول خودمون دشمن هم نتواند به سادگی به اونها شبیخون بزنه دیدبان داشته باشن از نظر سوغل جیشی مسلط باشن خب اوهیده اینه میگه نصر تهم نصره یعنی نشره پخش کرد منتشه پر. پخش کرد یعنی پخش و پلا کرد درست؟ نصرته البته بیشترش برای در و گوهر به کار میره لذای تفسیرم جلال الدین سیوتی داره اد در منصور یعنی گوهرهای پراکنده خب نصرته یعنی پراکنده کردی اینها رو کیا رو پراکنده کردی؟ ابطال، قبطال دشمن خب فوقل احیدب بالای این کوه آهیده یعنی در اطراف این قله با قلعه بالای این کوه این جنازه ها رو همیتون ریخته بود کلهی همه این کوه الاهیده کلهی تاکیده کل این آهیده پر شده بود از بگید جنازه اینها که پخششون کرده کما مثل اینکه که نصرت پراکنده میشه فوقل عروس بر روی سر عروس اد دراهم آه درهم ها. چطور مثلا این مراسم رو نگاه میکنی میبینیم میریزن درهم ها رو همینطور درهم ها میریزه دل میخوره میاد پایین آه درهم درهم پول نقره شما هم اینها رو دیدید حالا چرا اونها رو تشبیه کرده به درهم چون اونها ذره پوشیده بودند کلاه خود گذاشته بودند و این ذره ها از آهم بود و برق میزد و قبلا گفتیم آ این کوه اوهایدب رو که اینها رو از بالا تو میکشتی و میریختی همین طور پایین تشبیه کرده به یک مراسم عروسی که از بالا درهم برزن بیاد پایین همینطوری میریزه میاد اینجوری تا اینها رو پخش و پلاک کردی برونی خیلی قشنگ گفته ها یه نکته ای رو بگم ببین نسرته هم فعل و مفهوم. فوق الوحیده فوق ظرف متعلق به نسرته این کما نصرت این کما که هست و اون طرف نصر تهم. این طرف نصرت فعلا از یه جنسه این ما مای مستری هست مای مستری است و تعبیر به مسترمی میشه که نصر الدراهم فوق عروس که نصر دراهم فوق عروس که نصر دراهم فوق این که نصر میشه مفعول مطلق برای نصر تهان یعنی اینطوری بوده نصرن نصرن با سیسه نقطه. که نصر دراهم فوق عروس. اینو بهش میگم مفعول مطلق به بیمیابه درست شد یعنی اون نصرن افتاده این که نصر جاش نشسته صفت جای اون اومده شده مفعول و مطلقه. یعنی تخش کردیم اونها رو بر روی کوه و دیبه و همش پخش کردنی مثل پخش شدن درهمها ها بر سر عروس مثل پخش شدن درهم ها بر سر عروس یعنی کشته هاشون بعد گفتم چرا گفته درهم چرا نگفته دینار چون دینار پول تلاست شد اما درهم پول نقره است سفیده اونها هم به دلیل اینکه که کلاخود و زره و اینجور چیزاشون از جنس آهم بوده و سفید و اینها از بالای کوه می پرت و پرت می پایین این سینکش کوه ریخته بوده تشبیه کرده به درهم های ای که بر بود. خیلی زیبا بود از نظر ترکیبی هم که برای شما بیان که خب نصر فوق ال احیدب یعنی الجبل ال اون کوه ال این پهلوانان روش ریختی کشتیو ریختی کما نصرت فوق ال در دراه حالا بریم بیت باید. و دو صبح به کل خیل و کوره و کوره ال ذرا و بعد کس سر هاولل وکول و بعد کس سر معنا وکول یه ذره ترفی رو بگم متوجه میشید قدوس بکل ثيلل وکور علام زیرا علز گورا زرا، ذرا هر دو درسته و قد کسورت حولل وکورل متا ایم. وکور جمع وکر وکر یعنی لانه پرنده جایی که پرنده توش تخم میکنه بهش میگن وکر یعنی عش اش،, اش و وک وکر و تائر یعنی مبی اون جایی که میخوابه روی تخماش لغت رو بتونیم زرا ذرا. خب جمع زروه یا زروه زروه باشه جمعش میشه زرا زروه باشه جمعش میشه زرا لذا هر دو نرد شد یعنی قله پس زروت الجبل یعنی قله کو. پس زرا میشه اعالی الجبل قلل الجبل آه شد اینم تا اینجا لغتی که براتون گفتیم دوسه یادووسو یعنی لگد مال کرد. یعنی لگد مال کرد. دا یادووسو یعنی لگد مال کرد. او. یعنی لشکر تو. خیل یعنی سواران لشکر تو. فائل تدوسست آل مفعولش ال وکور خب بالای کو کدوم پرنده ها لانه میگذارند اگه دیده باشید این راز بقا و اینها اقابه شاهینه این پرندگان بالای نوک کو اون قله ها بالای کو لانه های خودشون رو میذارند بلند پرواز این هم داشته باشی که منظور از وکور اینجا لانه پرندگان لانه اوهاب هاست خب. دیگه چیزی نداره تدوسره که گفتم لگدمال مال کردن داسه یه دوسو بکر یعنی به واسطه تو یعنی با فرماندهی تو حالا معنا کنی تدوسو رو بکر. یعنی لگدمال مال میکردن بکر به واسطه تو الخیل لشکریانت الوقورت لانه پرندگان بود. یعنی لانه پرندگان مون زیر پایه بگو نشگریان تو در نوردیدند الازدرا یه الذرا حال است از برای الوقوع در حالی که اونها بر روی بگید قلده ها بودند لانه ها در حالی که بر روی قله ها بودند توسط لشکر تو به فرماندهی تو در نوردیده شدند بچه بعد چه شد و قد کسرت هول الوکوره المتایمون و پر شد کسرت یافت هول الوکور در اطراف این لانه ها جمع مطعم یعنی غذا غذا اومد بغل غذاها ها اونم اومد بغل لانه ها افتاد چون این اقاب ها لانه که میذارند بچه هاشون که در میاد چکار میکنند بگید پرواز میکنند میرند تا مثلا ده گلومه دونورتر یه چیزی شکار کنند با زحمت میارند به قول خودمون تا لب این کوه به این بچه های جوجه های خودشون میده میگه تو غذاها رو آوردی ریختی دور لانه ها حالا این غذاها چی بوده جسد این دشمنان که در نوک کوه اینها رو بگو کو گشتی غذاها اومد بغل اینها افتاد میگه در نوردیدی تو نشگریان تو به واسطه ی تو لانه های پرندگان عقاب رو که بر روی قله‌ها بود. و فراوان گشت در اطراف این لانه ها غذا ها. بیا اواقاب ها کیف میکنن لزوم نداره به برند تا کجا برای جوجه ها غذا بیارن. و غذا رو کنار جوجه بگید آماده کردی؟ بشنگ بود تدوس بکل خیل الوکور علی ذرا علی ذنا و قد كثرت حول الوکورن متا ام یعنی انقدر تو کشتی و اون بالا کنار لانه‌های اونها انداختی که دیگه اونها از نظر غذا مستغنی شدن دیگه نیاز که به اینکه برن و بگردن و چیزی پیدا کنن برا جوجه‌هاشون بیارم یعنی چی یعنی دشمن از ترس تو تا کجا فرار کرد با نوک کو تو کجا دشمن رو رفتی و چی کردی همون نوک کو در نوردیدی با لشکریانت های پرندگان رو بر نوک کو بر نوک غلهها های این عهیدگ و دزا برای این پرندگان در کنار لانه هاشون فراوان شد. یعنی تو تا اونجایی که میشد کشتی و در کنار اینها قرارد. یعنی اینها تا کجا فرار کردند و کجا نشگریان تو به اینا رسید اینا هم همه به واسطه تو بود بکردن تو دیگه چیزی ندارد. تدوس رو که این تدوس رو باز مزاره این سکانس داریم این سکانسش چیه؟ میگه تو به طور مرتب مرتب ل... تمام این قله های کوه را پر از کشته دشمنان کردی با لشکر خودت که به فرماندهی تو بود و این جنازه ها رو در کنار لامه اقافا انداختی دیگه اقافا لزوم نداره برن خودشون شکار کنن هران چی که میخواستن تو براشون آماده تادوس بکا خیلال وکور علز برا علذرا و قد چه صورت حولل وکورل متاعم خوب حالا پس تو در نوردیدی ببین لشکریان تو در نوردیدند به واسطه تو لانه‌های عقاب‌ها را در حالی که بر قلعه های کوها بود و قد که صورت و فراوان شد در حول این لانه ها ها و غذاها ها ها آنچه خوردنی بود در اطراف لانهشون پیدا شد دیگه نیازی نبود که برند و از راه دور شکار کنند و بیاد این دیگه خیلی قشنگ درست کرده بعدی این کنید دنباله همین معناست تزن تزن فراخ الفتخ انکه فراخ جمع فرخه یعنی جوجه درست شد تزن و فراخل فتخ انکه تها به اماتها و هیل اطاق و سلا دمو دو لغت داره که معناه کنم میفهمیدستم معناه مفهوم بیترو به دسته فتخ جمع فتخا مثل باکم جمع بکما افعل و فعلا جمعش میشه فعل درست شد مثل احمر و همراه جمعش میشه حمر اصفر صفراء میشه صفر که برای رنگ و عیب میاد درست شد مثل اعما و امیاء نابینا جمعش میشه چی؟ اومیو سومون بکشمون اومیون درست شد؟ فتخ جمع فتخا این اقاب های ماده رو میگن عقاب ماده میشون میگن فتخا فتخ پس عقابان ماده چون تیز پرواز هستن از فتخ گرفته شده باز میشن بالوپرشون فتخاق یعنی اقاب بقید تیز پروازی امات جمع امه امات جمع امه ام یعنی مادر این کلمه اگر برای مادر انسانی کار بره یه ها بهش اضافه میکنن میگن امهات درست شد تو قرآن هم داریم امهات و ها. یعنی مادران انسان اما اگر برای غیر انسان به کار بره درست شد میشه امات دیگه اونها رو بگید ندار درست شد این امات یعنی مادران اما برای غیر انسان یعنی جمع عمه در مورد کسانی که عقل ندارن سیما لایعه اطاق جمع عتیقه عصبی که شناسنامه داره فرسون عتیق یعنی اسب اصیل عصبه چی, چی میگم با نژاد اطاق جمع اتیق یعنی اصیب با نژات اینم بدونید سلادم جمع سلدم قصف خیلی محکم و سفت و سخت و همچین با قول خودمون مرد و مردونه رو بشون میگن سلدم فرسون سلدم یعنی اسب زمخت محکم درست. میگه تزن گمان میکردن فراخ جمع فرخه یعنی جوجه ها میگه تو رفتی اون بالا توی رسیدی به تدوس و دیگه زیر پا نهادی آ این با قول خودمون لانه های ها رو این اقاب ها لانه هاشون توش چی بود جوجه میگه گمان میکردند درست شو جوجه های اقاب ها فراخ و الفتق یعنی عقبان جمع اقاب فراخ هم یعنی جوجه ها درست شد؟ رو گمان میکرد وقتی که لشکریان تو کوه رو بالا رفتند و رسیدن به لعانه های اونها بچه های باور باور نمی کردن که غیر عقاب چیزی بتونه اونجا بیاد اونها تزن و فراخلفت انکه زرتها به اماتها درست شد؟ یعنی اینها تزن و این انه با اسم خبرش جای دوتا مفعولت از اون گمان کردند جوجه های ها تو انکه نکه به اماتها تو دیده ای اونها رو درست شد به جای مادرانشان یعنی فکر کردن که مادراشون اومده فکرم عقاب چون اونها باور نمی کردن که از بگید مادران خودشون و اقاب ها کسی بیاد یعنی اسبان تو کار عقاب کردند چطور اقاب تا اون قله میره اون همونطور لذا اون جوجه ها اینه ها رو وقتی تو رو با لشگری ها کردند کردن مادرانشون رو گرفت. میک میکنم گرفت انکه زرتها درست شد به و وحیل اتاق در صورتی که اونهایی رو که اونها جای مادرانشون گرفته بودند به جای اماتشون و حالا که اونها اسبان بگید با نجات ال و ثبادم زمخت و قدرتمند بودند. مادران اونها نبودند اسبان زمخت و قدرتمند بودن که تا این مرحله بگید بالا آمده بودند. از موقع بگه لشکریان تو مثل اقاب عقابان بلند پرواز این اسبانه با نژاد و اسیل مثل اقابان و اسب تشبیه به اقاب میکنن دیگه وقتی رسیدن به قلها و در کنار این لانه ها, جوجه ها فکر کردن مادرهاشون اومده صدای قپو و ها که شنیدن فکر کردن مادرهاشون اومده و برای اونها چیزا بود تظن و فراخ الفطفه گمان می کردن این تا ماضی است گمان می کردن جوجه های اون عقابان ماده که در نکه گوه بودن انکه زورتها این اینکه تو اونها رو دیده ای به اماتها به جای مادرانشون این انکه زرتها به اماتها و هیل اطاق یعنی و این لشکر تو و حالان که لشکر تو که اومد انک زورتها یعنی تو اونها رو ملاقات کردی به جای مادرانشون درست شد یعنی تو با لشکریان دیگه اینکه تک نبوده یعنی انکه و جیشکه تو و لشکریانت وقتی اونها رو رفتید و اونها دیدن شما رو اونها رو گمان کردن شما رو به جای مادران خودشون و هیل و حالان که این امات نبودند بلکه اسوانی بودند که اصیل و با نژاد از اون نفراق الفدق ان تها به امات به جای مادرانشون تو اومدی و هین اتاق السوادم و, و حالا که اونا جای مادران خودشون گرفتن چرا چرا جای مادران خودشون گرفتن چون گفتند که تا این قله کوه که چیزی به جز مادران ما عقاب نمیتونه بیاد رضا فکر کردن اینا مادران شده عقاب ها هستن در صورتی که در حالی که اینها بگید اتاق بودند اسبان تیز پرواز بودند اسبان با نژاد بودند و سلادم جمع سلدم یعنی زمخت و محکم انکه زورتها به اماتها یعنی تو ملاقات کردی اونها رو به جای مادرانشون یعنی تو و لشگریانتون به جای مادرانشون ما گمان کردند که انک زورتها به اماتها و, و حالان که اونی که آمده بود و جای مادران اینها بود درست شد اسبان با نجاد و اسیل بود اسبان با نجاد و اسیل. چیز دیگه میشه اینجا فهمید دیگه نه یعنی وقتی که تو اومدی این همه با قول خودمون تو ریختی اطراف لانه اینها اینها فکر کردن شما مادرانشون هستی چون مادرانشون همین کار رو میکردن شکار میکردن از همه جا در اطراف لانه میریختن تزن فراخ الفتخ فخ انکه زرتها به اومات ها و هیل متوجه شدید دیگه میگه وقتی رسیدید شما اون بالا با لشگریان در سیف و دوله جوجه های این اقاب ها شما رو به جای مادران خودشون گرفتن چون فکر میکردن که به جز مادرانشون کسی تا این قلله ها نمیاد در حالی که اینایی که به جای مادرانشون گرفتن اسبان با نجات بودند و اسبان زمخت این یک دوم گفتیم که وقتی شما اومدی اون بالا و کشته های دشمنان رو در اطراف لانه های اینها ریختی اینها دیدن شما کار مادران اونها رو کردی گمان کردند که شما و لشکریانت مادران اونها هستی این هردوش درسته درست چه خب. بعدی میگه؟ از زلقت مشیتها به ها کما تتمشا به سعید عراقمون نمید دو سه تا لغت داره وقتی معنا بشه دیگه كدا. سعید تو قرآن اومده این کلمه سطح زمین رو میگه درست شد عراقم جمع ارقمه یعنی مار عراقم جمع ارغم یعنی مار خوب کوه رو با اسب رفتن بالا سخته دیگه و لشکر بخواد کوه رو بره کوه سنگید بالا سخته چی میخوشه اتونها کوه نوردی کردید سر میخوره لیز میخوره لذا برای خاطر اینکه لیز نخورند سر نخورند میگه شما کاری کردید که اینها سینخیز برند مثل بعضی از این کوهنوردها که وقتی یه سخته خیلی چیزه دیگه حالت ایستاده نمیرند یا حالت خوابیده با دستها میگیرند پاها هم جاهایش خاص میشه انگار داره مثل مار بالا میره میگه جاهایی از این کوه اینطوری بود شما مجبور شدید اینطوری برید ایذا زلقت یا تو نسخی دارد ایذا زلفت درست شد ایذا زلفت هر به یک معناست که زلقت بهتره چون زلقه یزلقو یعنی سر خورد معنای میشه هنگامی که سر خوردند لشکریان شما سخت میشد بالا برن در بالا رفتن از این کوهها تو قرار دادی این لشکریان رو جوری که حرکت کنند روی سینههاشون در این محل های لقصش در این سینه کشها روی سینه‌هاشون حرکت کنن آه، سینه خیز بره. مثل حرکت مارها مثل حرکت مارها و روی های خودشون در روی زمین چی رو میخواد تو این بیت بگه؟ مخواد بگه اینا به سختی رسیدن این بالا یعنی اینطور نبودش که این لشکریان تو به سادگی با چهار تا اسبش باشن بالا نه به سختی از این سینه اومدن بالا بعضی جاها رو مجبور شدن مثل مار بخزند و از لغزشگاه های اون بیان بالا ایز زلقت زلقت یعنی خیل یعنی لشکرا زمیر هیه میخوره به اون اطاق سلادم یعنی لشگر سواره تو اون سوار نظام ازا زلقت هرگاه که می در لغزشگاه ها ها حرکت میدادی تو اونها رو که مشایت ها بهتره مشایت ها مشا یعنی رفت حرکت که یعنی حرکت داد تشکیل بذارید مشایی تها ازا زلقت زمانی که می لغزیدند لشکر تو مشایی اونها رو بگو. راه مینداختی به به ها بر روی سیناهاشون سینخیز می‌گردشون. گردشون کما همونطوری که این باز مفهول مطلحه. سینه خیز می اونها رو همونطوری که تتمش شا سعید همونطور که سینه خیز حرکت می کند بر روی زمین العراق مارها فکر کنم فرمی کنید فسعید متعلقه به تتمش شاست العراق باید پس ازا زلغت زلغت کی؟ لشکره وقتی لشکره تو در سینه این کوها پاش می مشیتها مشیتها تو راه انداختی اونها رو به ها بر روی سینه هاشون همونطور که حرکت می کند از سطح زمین مارها همونطور که بر روی سطح زمین مارها سیندخیز حرکت میکنند قصدش از این بهتی چی بوده؟ اینکه که کار او رو نشون بده نه اینکه حالا تو مثلا فرض کن که از داشتی مثل تانک بودن اینها خود تپ تپ تپ اومدن بالا و آدم ها رو کشتن و مثل این تو که تو این بازی های کامپیوتری هست این نبوده زحمت کشیدی تو جاهای مجبور شدی حتی از آی زمخت خودت حالا ببین دشمن چقدر اینجا باز این فهمیده میشه دشمن چقدر ترسیده بوده که قبل از سیف و دله زودتر از سیف و دله رفته بوده اون بالا که تو این اسبان درجه یک که خودت رو اینطوری با قول خودمون سینکش کوه رو که محل لغزش بود و نمیشد بری بالا سینخیز سینخیز اینا رو بردی تا رسوندی به دشمن و دشمنان رو اونجا کشتی و انداختی کنار لانه مقاب کشتی و انداختی کنار لانه مقاب خواهد, خواهد. کل یومن ز دموستق و مقدمو کا فوق علال اعدامه ل وجه خب این کیا داشت با قول خودمون تو لشیاتون اون دمتریوس رو که دموستق بهش میگفت آه که آهی سیف و شکستش داده بود پادشاه روم و او زخمی شده بود و فرار کرده بود اون دو مستق اون رو داره به قول خودمون بیان میکنه و جنگ با او رو داره میگه دلست شو جنگ با او رو داره بیان میکنه بر برخلاف عد برسته ادبره یعنی پشت کرد اقدمه یعنی حمله کرد اینجا خیلی جالب میکه. افی کل یومن زا یعنی هازون زد دومستقو یعنی هازد دومستق مقدمان آیا در هر روزی دومستق فرمانده رومیان بود دیگه برای میگه آیا در هر روز این دو مستق یورش میکنه مخدمون گفاهو در حالی که گفاهو یعنی پشت سرش علل اقدام علل اقدام بر قدم های او ببینید قدم این پنشت انگشت پا هست تا این جایی که مص میکشید اونو میگن قدم قفا پشت سره خب قفا ها علال اقدامه علل اقدامه للوجه لائم لائم یعنی ملامت کننده لائم یعنی چی بگید ملامت کننده این عبارت رو اینطور بنویسیدش چون جا به جا داره چون شعره دیگه برای که شعر آدم بفهمه باید لغاتشو تو جا جاش در جاش بیده به نشید قفاه لا ایمان علا اقدامه چون یه نفر که فرار بکنه یه نفر از دست دشمن فرار میکنه روش برمیگرده از دشمن پشت سرش به طرف دشمن میمونه که اگه ضربه بخوره میخوره به پشت سر یعنی دشمن به تعریفش بکنه میزنه به پشت سرش قدم های اون هم مطابق با صورتش به طرف جلو میره اون یعنی نوک انگشتای پاش قدم هاش به طرف جلو میره فرار که میکنه صورتش هم جلو رو میبینه پشت سرش به طرف دشمنه میگه دومستق هر روزی که بیاد به تو حمله کنه بعد مجبور میشه فرار کنه وقتی فرار میکنه پشت سرش به صورتش میگه خاک بر سرت ملامتش میکنه بر خاطره بر اون قدمهاش قدمهایی که داره بر میداره و به طرف فرار از دشمن حرکت میکنه ها؟ یعنی پشت سر ملامت میکنه صورت رو چون صورت باید طرف دشمن باشه قدم ها باید به طرف دشمن بره پشت سر صورت رو ملامت میکنه بر قدم هایی که داره از دشمن بگید فرار میکنه فکر میکنه برست یعنی هر روز که دشمن بر تو حمله کنه بعد مجبور به فرار میشه و ضربه به پشت سر دشمن میخوره چون وقتی فرار میکنه تو تقریبشون میکنه پشت سر دشمن ملامت میکنه ناله و نفرین میکنه بگید صورت او رو بر روی قدم که داره بر میداره و از دشمن فرار می بر روی قدم هایی که داره بر می داره و از دشمن فرار یعنی چرا صورت رو داره ملامت میکنه؟ چون صورت باید دشمن رو ببینه به طرف جلو بره. با چی بره؟ بر روی قدم ها. حالا برعکس شده. صورت پشت به دشمن کرده داره حرکت میکنه فرار کنه. قدم ها هم دارن صورت رو میبرن یعنیتون. پشت سر ضربه میخوره پشت سر ملامت میکنه صورت رو که تو باید به طرف دشمن بودی و قدم ها باید به طرف دشمن میرفت. شما دارید از دشمن طرار میکنید و ضربه رو من دارم میخورم ملامت میکنن بگیر صورت رو بر روی همون قدم هایی که دارد افی کل یوم زد و مست و مقدمان. این این قفاهو لا ایمن اون لام لام تقویته یعنی وجخو درست شو م الف از اضافه ندید اون لا خبر قفاه هست لن یعنی وجخو علل اقدام،, اقدام یعنی علا اقدامه بر قدمهاش یعنی علل اقدام متعلق به این جمله قفاهو لا امون. وجههو علا اقدامهی حال است از برای دومستو یعنی اون فائل مقدم که قبعی که تو آیا در هر روز این فیکل لیومنی؟ یعنی اینو میخواد بگه میگه آیا میشه که بار دیگه خلاصه پیدا بشه دومستو بیاد و جلو و بخواد با تو بجنگه فرار کنه و پشت سرش ملامت کنه صورت او رو بر روی اون قدم هایی که داره ور میداره و فرار میکنه بگه خاک پر سره پشت کردی به دشمن و داری فرار می‌کنی با این قدم و من رو دم تیغ دشمن دادی یا آیا دشمن تو دو مستق چنین کاری رو خواهد کرد افی کن لیومن زد تو مستق و مقدمون قفاه و علال اقدام. یعنی آیا هر روز این کارو میکنه یعنی غلط میکنه دیگه این کارو میکنه با بلایی که تو به بلای عفی کن آیا در هر روز زد دو مستق این دو مستق بیچاره آه. مقدمون حمله میکنه در حالی که پشت سرش ملامت کند صورت او را بر برقدمهایش آه. آیا این کارو میکنه؟ یعنی هرگز این کارو دیگه نمیکنه و این مطلب را انجام نخواهد. خب و اینجا رو خوندیم دسیده بسیار زیبایی بود الله ادامش جلسه بعد آرزوی توفیق و سلامتی براتون داریم موفق و معیت باشید و السلام علیکم و رحمت الله و